این رو و سرنخ بحثه فرمود ان الله لا باهی، به که کرام الملائکتهی کل یوم مرارا پیغمبر خدا رو کردن به حضرت خدیجه کبرا فرمودن که خدا خدا هر روز اون هم مرارا هر روز مکررن به ملائکه کرام نه ملائکه دست پایین ملائکه مراتب دارن اصنافی دارن هر روز بعد روز خدا با روز من و تو فرق داره کل یومین هوفیشن تو زمانین گرفتاری ما تا تو زمان هستیم هنوز به معرفت مطرق و نهل اطلاق مرسیدیم تا میگیم یوم من شما چی تبادر پیدا میکنه تو زین ما 24 ست ولی وقتی که مطلبون ان الاطلاق رسیدی از عالم حدود و از عالم اشارات به مقام لا اشاره در آمدی به مقام لا تعیین در به اون مطالبی که اعز که مقام مقام معناست توش مثال ماده صورت وجود نداره تو اون عالم قرار گرفتی دیگه اون یوم با این یوم فرق داره خدا در هر یومی به کل یومین یعنی, یعنی به هل آن یعنی به هر لحظه بعد مرارن متکررن به ملائکت الله اونم نهر ملائکیه چون ملائک مراتب داره ما ملائک سماوی داریم عرضی داریم یک عده ملائکه هستن چنان مستقرب در پروردگار هستن که اصلا متوجه تا حال نشدن که خدا آدمی را فریده در روایت داریم عده از ملائکه هستن علت دوام در قیامن علت دوام در رکومن علت دوام در ستودن علت دوام در قعودن رواید شد در بیانات امیر المؤمنین علیکی افتر سلوات المسلین در نحجون بلاغ حس مراجعه بفرمایید ببینید چه خبره نه به هر ملک ملائکی که صاحب کرامتن لقد کرمنا بنی آدم این کرامت در مقام آدمیته بعد کرامت در مقام ملائکه چیه باز بحث دو تا شاخه میشه افسوس که فرصت نیست که اینها تفقه بشه کرامت در انسان و در بنی آدم یک معنا داره یک کرامت در حضرات ملائکت الله باز یک معنی دیگه ای داره منتها فعلا سر ما گرم به نخود کشمش به این مراتب و به این حقایق نرسیدیم و نخواهیم رسید خدای تبارک و تعالی بعد ان الله اومده الله اومده اسم جامعه جمعی صفات کمال یعنی خدا با تمامیت خداییش خدا که قابل فهم نیست و ما قدو لا حق قدره خدا ان اومده جمله جمله اسمیه است چه استمراری در این کار هستش چه خبره بعد خبر رو کی میده عقل کل و کل العقل که وقتی که لب سخن باز میکنه ابراهیم خلیل نگرانه موسبن امران گوش به زنگ میشه که خاتم داره چی میگه خدای تبارک و تعالی حالا خود پیغمت داره به خود حضرت خدیجی گزارش میده جناب خدیجه خدای تبارک و تعالی مقام الوحیت خدا هم میگیم قلطه در ترجمه هست در ترجمه هستی که ما به الفاظ گرفت داریم مقام الوحیت با اون جامعیتی که درش نه افته هست به ملائکه ی کرام هر روز مکذرن به وجود توی حضرت خدیج مباهات میکنه یباهی فعل مزاره اومده باز بحث استمرار بعد میخوایی استمرار رو پیدا کنی برای ازل خدا رو پیدا کن چون کار خدا یه موقع استمرار کار من و که محکوم به زمانیم وقتی من شما محکوم به زمان باشیم میشه اول آخرشو یه جوری درست کرد ولی فعل خدا این مباهات الهی اولا در مقام به ماه و هوایش یعنی چی؟ بعد این فعل استمرالش از کجا شروع شده؟ آیا کی میتونه ازل و ابد رو پیدا کنه؟ خدایی که خودش ازل آفرین و عبد آفرینه اون خدا با اون جامعیت از برای ملائکی کرامش مباهات می کند به وجود عقدس این بانوی عظیم و شن. نه از وقتی که اسلام طول کرده بانوی بزرگ اسلام این به قدر فهم ماست مرد در حسرت فهم درست این روایت خارج از عالم زمانه خالج از حدوده خالج از اشاراته